تسته روشنه که رفته بهرام و شاهزاده خانم اقلیم اول گفته که لباس سیاه داشته و گمبچه هم گمبته سیاهه بیگه که یه خانم میامد تو خونه ما و همیشه سیاه میپوشیده گفتیم چرا سیاه میپوشید؟ گفت من خدمتگذار یه شاهی بودم و این شاه با اینکه اول سیانه نیم پوشید ولی بعد یه سفری رفت مدتی نبود ما ندیدیمش بعد که آمد لباس سیاه و بعد یه روزی که من داشتم پاشم اونوالی درمان پلوش بودم خیلی متاسف و متاسف بود و ناراحت بود و گفتش که ببین فلک با چه بازی کرد و هیچ هم نپرسید از من که این لباس سیاهی تو از چیه اینم جواب می‌دهی که شما شاهیم کسی جرعت نمی‌کشی بپرسم شما که نمی‌که ازتون تون پرسید ولی خودتون اگه می‌خوایید لطف بکنین و گفت باز پرسیدن حدیث نهوف هم تو دانی یا توانی گفت بعد میگه میگه که من یه مسافر یه مهمونگونهی داشتم و ارز کنم که هر قریبی که میامد از سر را می میابردن و شومش میدادن و نهادش میدادن و, می و نگه میداشتن و حدیبش میدادن و من هم هر چیز طرفه و عجیب قریبی که این آقا این مسافر دیده بود ازش میپرسیدم تا یه روزی کسی آمد لباسش سرتافاست یا و من از اون پرسیدم که علت این سیاه تو چیه؟ تو بلکان اینه ما از من هرچه کردم گفت نه بله خره که من بیش از حد اصرار کردم گفت است در ولایت چین شهری ها راسته چه خلده بر این مردمانی همه به صورت ماه همه چون ماه در پرند سیاه که آن شهر با نوش کند آن سوادش سیاپوش کند در به خون گردن هم بخواهی صفت بیشتر زیم سخن ها هم بود. این سخن گفته بار خر بست آرزوی مرا در اندر بست رفت به کارش میگه من هم بود دیوونه بشم از توزولی که حتما بگونم که این چه خبره چی بوده بالاخره آقابت من کردم خیشی از خانه پادشاه کردم پا رفتم میگه به یه غصابی آشناشتان در اون شهر از هرکین پرستان جواب نمیداد تا یه قصابی رو دیدن ولاخره رزر به پول و اینا رامش کردم تا یه شبی بریم تا اونچه چه بهت بگم. من رو برد در یه خرابه ای و یه میلی در اونجا بود بلند و سبدی پای و اون میلی بود گفت پشیم تو این سبد میگه نشستم تو سبد و این سبد رفت بالا خنابی که بود حالا نظامی میگه رفت بالا نمیدونم که قصدابه کشتش بالا یا خودش تعبیهی داشته درش که میره بالا و هران رفت بالا و میگه وقتی کاملا رسید به آخر میل کناب و بست اون قصداب راش کشید رفت. به من موندم اون بالا مفروط و متحقیه رو باید بخ. و فکر کردم که این ناجوان مردی کرد و مال منه میخواد بخوره چه کاری کرد و چه بکنم، چه نکنم متوسطل شدم و زار زدم و کردم تا مرغ اومد نشست روی اون میله و من وقتی میخواد مرغ بلندش سهر من پاشو چستی دارم و اومدم رسیدم به یه جایی رفت جای خیلی باصفایی بود و اینا بنزی یه نیزه از زمین بلندتر پر پرواز میکرد من دستانویل کردم و افتادم روی گلو دیگاهو از کنم که بعد میگه که آقابت رخت بستم از شادی زیر سر بیچ و سر و آزادی تا شب آن جاگه قرارم بود نشدم گر هزار کارم بود اندکی خوردم اندکی خفتم در همه حال شلچ میگفتم شب و آرائشی دگرگون ساخت کهلی اندوخ قرمزی انداخت بر سر کوه مهر تافته تافت زهره صبح چون شکوفه شکاف بادی آمد زره پشاند غبار بادی آسود طرز باد بار عبری آمد چه اب نیسانی کرد بر سبزهات و رخشانی، راه چون رفته گشت و نمزده شد همه راه از پتان چون بودکده شد گیدم از دور صد هزاران هور که آسمان که از من آرام و شد دور یک جهان پرنگار نورانی روح برورد چون راه ریحانی هر نگاری به سان تازه بهار همه در دست ها گرفته نگار لبه لعلی چو لاله در بستان لعلشان خونبه های خوزستان دست و ساعت پر از علاقه زر گردن و گوش پرز لعلوه تر شامهایی و دست شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه تا اینجا به تفصیل هرچه تمام تر ما جزئیات و مطالب رو بحث کردیم حالا از اینجا آقای نوح بعد من شروع میکنم به حوزی دادم آمدند از کشی رعنایی با هزاران هزار زیبایی بر سر آن بطان هور سرشت فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت فرش انداختند و تخت دادند راه صبرم زدند و سخت دادند چون زمانی بر این گذشت ندیر گفتی آمد از سپهر بزی، آفتابی پدید گشت از دور کاسمون ناپدید گشت نور گرد بر گرد او چهور و پری صد هزاران ستاره سحری سر بود کنیزکان چمنش او گل سرخ آن بتان سمنش هر شکرپارش هم این در دست شکر و شم خوش بود پیوست پرسهی سرب گشت باغ همه شب چراغان با چراغ همه آمدون بانوی همایون بخت چون عروسان نشست بر سر تاک عالم آسوده یک از چپ و راست چون نشستو قیامتی برخواست پس یکی لحظه چون نشست به جای برغه از رخ کشود و موزهز پای شاهی آمد برونز تارم خیش لشکر روم و زنگش از پس و پیش رومی و زنگیش چو صبح دورنگ، رزمه روم داد و بزمه زنگ تنگ چشمی ز تنگ چشمی دور همه سربی خاک و او از نو بود لختی چو گل سرفتگنده به جهان آتشی درفتگنده چون زمانی گذشت سر برداشت گفت با محرمی که در برداشت که زنا محرمان خاک پرست می نماید که شخصی اینجا هست خیز و برگرد گرد این پرگار هر که پیشایدت به پیش من آر آن پریزاده در زمان برخاست، چون پری می پرید از چپ و راست چون مرادید مند از آن به شگفت گیرانه دست من بگیرد. گفت برخیست تا رویم چو دود بانوی بانوان چنین فرمود من بر آن گفته هیچ نف زودم کار زومند آن سخن بودم پر گرفتم چو زاغ با تابوز آمدم تا به جلوگاه عروس. پیش رفتم زروی چالاکی خاک بوسیدمش من خاکی خاستم تا به پای بنشینم در صف زیر جای بگزینم گفت برخیز جای جای تو نیست پایه بندگی سزای تو نیست پیش چون من حریف مهمندوست جای مهمان ز مغز به که ز پوز. ول، شم شاهانه من قبلا هم از که عرض کرده دارم شم که بر مجلس اعیان و هشتاف از موم می‌ساختم و مواد معطب‌ترم درش درک می‌کردم کافور، مشت، انبر و امثال اینا در این وقتی این شام میریختن آش مخلوط میکردن برای اینکه موقع سوختن روی خوش بدهن اینکه که شم‌هایی بده از شاهانه شم شاه ها با گده ها فرق باشده شم گده ها خری، یاوی، چطوری، چیزی که میمرده پیاش میکرفتن و آب میکردن و شم میساختن که من این شمهای پیهی رو دیده بودم در بچیلی که نظر میکردن و اینا و بسیار بوی پدی میداد و بسیار هم بعد میسخت و بیش از نصفش دوت میشد نصبی همون چربی ها و پیاب میریخ زمین خلاصه روشنایی چیز جز بوی بعد و دوده و کسافت چیزی ازش آید نمیشون برحال شمهایی به دست شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه این گاز به معنی بخار که حالا گس یا گاز فرانسا هم همینه میگیرن این اون نیست گاز یعنی قیچی می‌دونید که قیچی لفظ ترکیز عربیش هم مقراز برای اینکه قرض یعنی بریدن مقراز یعنی وسیله بریدن یه چیزایی داشتن همون پلوی وساطه می‌دونه که تمام روشنایی مال سهم هم بود بنابراین باید این وسایل باشه حالا ما اینا رو نداریم اینا ولی اون وقتا بوده اینا پای اونجای چیزی شبیه قیچی کچلو بوده که وقتی که تیله بلند میشد سرشو میزدن برای که شعله به همون اندازهی که میخوان باشه و او رو بهش میگفتن گاز که در چیزم آمده است در حافظم آمده است. یک جا برای طلا که میگه طلا رو با گاز میبوریدن چون زر اگر برن مرا در دهان گاز با جای دیگه‌ای به نظرم برای شعم هم هست من حالا حافظم یاری نمیکنه ولی به هر حال این گاز به معنی اون وسیله‌ای بود که سر سر رو باش قیچی کردن و با گاز زدن خودمون ارتباط داره نه با اون گاز چمهایی بده است شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه آمدند از, از همونه. بلی انبرم بله بله همونه بگی بله بله آمدند از کشید و رنایی با هزاران هزار زیبایی کش به معنی زیبا و رنا و دلبر و حافظ میگه که دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری مرضیت السجایا محمودت الفسایه. احتمالاً کش هم جزء شهرهای خیز باشه یه بار من مثل اینکه راجب شهرهای خیز عرض کردم یه عدد شهرهایی بوده از که مبارزان اسلام میرفتن زن بچه مردم و میتاروندن و اسیر میکردن و می آوردن تو بازارها به عنوان برده میتروختن تا اینا رو طبیعت میکردن ناکنیز بودن و غلام بودن و کار نداریم بعد این شهرها معروف شده برای اینکه زیبایی زنانه، زن و بچه مردم کسی نمیدیده که هستن اسم زنی کسی نمیوردن بد بوده بنابراین اون بانویی با که میاد ساخیگری میکنه و میرخصه و سنتور میزنه و میمکنم مجلس آراهی میکنه و بازی میکنه با مهمونا و پذیرایی میکنه اینا همه قلاموکنی دو زرخری بودن و همه از نژاد زرد بودن به همین دلیلیه تمام شهرهای اون ناحیه معروف شده به شهرهای خوسمخیز و در زمین باید ارز کنم که چین رو هم خیال می‌کرزن یه شهری. در هر حال چین ماچین ماچین چین یعنی مها چینا چین بزرگ پسار خمار، یقما، خلخ، فرخار، نوشاد، خطا، خطن ارز کنم که کشمیر، روم، بلغار، یا همه جز شهرهای قسنویز اشاد بازم هست که من الان یادم نیست ماه ختان مال قانی شیرازیه ماه ختان شاق روم، شاقه کشمیر فتنه چین سوق خلخ آفت یغما تاجکی از مشکتر تر گزار سر افسر تجارت تاج قباب و افسر دارا خمم خم و چین چین شکن، شکن، سر ظل فش کرده، زهر صوفدی، شکل چلیپا، الاخر فصیده خیلی قشنگ از ما رو این کش هم جز اون شهرها بوده است آمدند از کشید و رعنایی رعنا که حالا به نظر ما صفات خوب میاد و الان این جوون رعنای یعنی جوون برازنده بشقد و آمد پاکیزهی حسابی رعنا از مستر رعونته و رعونت معنی خودپرستی و خودخواهیه و اصلا رعنا معنی خوبی نداره کاجحافظ در یه شعری میگه که که اون طرفشن متاسفانه یادم نیست شاید آقای نوح یادم بیاره میگه جهان پیگ رعنا را ترح در جبلت نیست. فهم می ولی نظامی اینجا رنا رو سف به عنوان سف خوب به کار میبر یعنی همون زیبا آمدم از کشید و رنایی با هزاران هزار زیبا هزاران زار هزار هم د مباره شاعران است تا زار هزار میشه میلیون ها هزاران ضرب در هزار میشه میلیون ها بر سر آن بوتان و سرشت فرش و تختی تو فرش و تختی به هو رو به تفصیل صحبت کردم براتون راجع بهش قبلا. ولی بوت رو شاید نگفته باشم. بوت در عربی هست سنم. چشمم اسنام. در فارسی ظاهرا باید بوت مخفف کلمه بودا باشه. برای این که هر بودایی موظف یک مجسمه بودا رو در منزل خودش داشته باشه و در برابر اون میایش کنید اینه که اصلا اصلا اون بوتایی که نمیدونم مه و مه... مه... مجسم هایی که در معابد بوده یا اون چیزهایی که احراب به صورت بط میپرستیدن هیچ ربطی به این قضایی ها نداشتی یکی سنگ بوده نصلا یک ستون بوده نمیدونم چیزهای اینجوری بوده اگر خیلی دلتون بخواد ارز کنم که کتابی است به نام الاسنام یکی از کتاب خیلی خیلی درجه یک الاسنام یعنی بط ها ماله یه نویسنده عربی به نام کلبی که از قبیله ونیکلب بوده معروفه به کلبی این تنها است که باخی مونده برای ما و دست ما رسیده و اسم و شکل و حکایت بوتهایی که در مکه بودن و بعد از فتح مکه پیغمبر انفرمو فرمودن شکستن به اسم بعضی اومده در قرآن مثل لات و منات و هوبل و یقوس و یعوق و نصر و نمیمه همثال اینا اینا همه رو دونه دونه داده که این کدوم بود کجا بود عقیم داشتن که این چیه چطوره تمام اینا به کتاب فوق العاده جالبی توجه است این کتاب هم مدن عربیش در دسته هم به ترجمه شده هم آقای جلالی نایینی که یه چاپ و دارن با نظیر احمد این کتاب رو ترجمه کردن الاسنام کلمی کتاب خیلی مهم است از داشتن اطلاعات ولی کلمه بوت ظاهراً از بودا، مخفف بوداست آه. اون چه میگن رالینش این است که ماجرسانه اودا رو سعی میکردن که با زیورها و زینتهای دوناگون و خیلی خیلی اعترام احترام بذارن و عزت بذارن این است که زن خوشگل رو تحکیل کردن بوت که مورد پرست بر سر آن بوتان حوف سرشت فرشت تختی چو فرشت تخت بهشت شمن و بوت میست شمن وعنی بط پرسته اسم قبیله ترکمنه کلمه هم مثل اینکه ترکمنی یا چینی وصن مثل اینکه در داریش ما اوسان جمعش عربی اونه شمن اسم یه راه و رسمیست که شمنیست بهش میگن و خیلی هم تحقیق در شده یه معلف بزرگ تاریخ عدیان هست به نام میرچه آئلیات و الان اگر زنده باشه نوید چار سالشه اصلا رومانیه سالها استاد کالج دو فرانس فرانسه بوده بعد اینجا آمده استاد دانشگاه شیکاگو هست با بزرگترین مبرخ تاریخ عدیان این های متعدد درباره باید داره و اگر علاقه من زیر اسمش این رساله ها حتما این هم هست تو ها هست زیر اسم الیاد بگیرین هست فرش انداختند و تخت زدند راه سبرم زدند و سخت زدند روشنه راه راه زدن مجازن وعنی رو بودن راه دلم زد یعنی دلم رو بود راه سبرم زد یعنی سبرم رو از من گرفت بلیه میگه که راه صبر منو زدن بر اینکه همه این دخترها دختر بودن در نهایت زیبایی همه چون زمانی بر این گذشت ندیر یعنی مدت کوتاهی که از این ماجرا گذشت، گفتی آمد ماه است پھرتی میگه اینا همه ستاره بودن بعد از مدت کوتاهی ماه هم آمد آفتابی پدید کشت از دور کاسمان ناپدید کشت از نو رئیس اینا خانم بسیار زیبایی آمد که این دخترهای زیبایدگی پیش او مثل ستارگان بودن در برابر ماه گرد بر گرد او چهور و پری صد هزاران ستاره سهری مراد از ستاره سهری زهره دلیلش اینه که زهره خیلی نزدیک به آفتاب دوممین ستاره نزدیک به آفتاب دیگه اولی اتاره ده دوممی زهره است این. اگر زیر آفتاب این آفتاب پرشن اگه اینجا باشه بعد آفتاب که غروب کرد غروب و آفتاب که آفتاب رفت پایین دیده میشه افقل غروب بعد اونم غروب میکنه اگر به عکس بالای خورشید باشه خورشید هنوز بالا نایمده زهره یه محتسری یه ساعت و ساعتی قبل از دمیدن آفتاب میاد سهرگاه ایرون بنابراین ستاره است که درست اولی که آسمون تاریک میشه گاهی در سهرگاه و گاهی در شامگاه دیده میشه و فقط دو تا ستاره هست که برای ما به استثنای ماه که ماه دور خود زنگرده دو تا ستاره هست که هلال داره صورت هلال و بدر داره یکی عطارد و یکی زهره نورانی ترین موقع زهره موقعی که صورت هلاله اتفاقا نه وقت بدر وقتی که خیلی خیلی خیلی نورانیه موقعی که ما به صورت هلال و این حیرت آور یه منجم انگلیسی هست به نام هرشل روی دوربین دوروین فکسنی که امروز دستشان بدن ده دولار نمیخرینش ارانوس و نتون اینا رو کشف خود پاپ و این یه خواهری داشت خوغلاده با استعداد و دارای چشمایی به قدری پرسو که گفتم که زهره رو به صورت حلال دلال زهره داشت گرد بر گرد اون چهور و پری هزاران ستاره سهری و هر یه ای که هیچ ستاره یا آسمون به همزه ستاره سهری من زهره پرنور نیست به دلیل نزدیکیش به میون میونه سیارات از همه پرنور سر زهره است بعدش مشتری و اینا برای اینکه بتونید تشریف بدین خاصیتش اینه که چشمک نمیزنه کاری روشن نمیشه نست و نورانی تنین خور ستاره آسمان ما نه سیاره پلانت نه ست نورانی تنین ستاره آسمان ما ستاره است که بهش میگن شعرهای یمانی شعرهای یمانی فرنگیش هم میشه سیریوس این سیریوس 9 سال موری از ما دوست یعنی نورش بعد از 9 سال میشه و این دومین ستاره است از دازه نزبیتی به ما اولین ستاره ستاره آلفا از صورت فلکی فانتورسه که چهار سال و نیم نوری از ما دوره این نزدیکترین خورشی دیمان دوبامیش این یمانی است که نه سال طول میکشه و مصری و خصوص خیلی خیلی برای این ستاره اقاید مفصلی داشتن دلیلش همین بوده که درست وقتی که این ستاره از افاق مصر تاله میشد تویان نول هم تا میدونید که تمام زندگی وردون مرچ باستگی داره به تو یا این است که خیلی خیلی بواسطه معتقدند اینا ستاره شعرآ این ستاره شعرآ ستاره مزدوجه یعنی دو تا خورشیدن دور هم می گرد بر گرد اون چهور و پری صد هزاران ستارهی سحری هر شکرپاره شمعی اندر ده شکر و شم خوش بود فیبا روشنه پر صحی سر گشت با صحی یعنی بلند و رساب باشنه پر صحی صرف گشت با همه شبچراغان باچراغ همین هم بردید خودشون گوهر شبچراغ بودن این پانوان و دوشی ولی خب چراغ هم دست شد. شبچراغان باچراغ همه مراد از شبچراغ گوهر شاید شایدن بهتر بوده که سر هم نوشته می که درست بفهم آدم که معنی چیه ولی این سوال آمد مانوی بانوی همایون بخت چون عروسان نشاست بر سر کنند بانوی همایون بخت همون رئیسشونه همایون قسمت اولش هماست هما اسم اون مرغ معروفه که می گفتن که سایش به سر هر کسی دیخته سایش به هر کسی بوده. دولت مرغ بسیار زشتیست مردارخار هم هست جزید مرغ های شکاری ولی خب، سایش رو فرخونده می کنست صورت دیگری هست از هماگون همايون و هماگون یعنی مثل هما یعنی خوج هست بانوی همايون بخت چون عروسان نشست برسره عالم آسوده یک سر از چپ چون نشستو قیامتی کاست. این مضمون رو که نشستن معشوق با برخاستن قیامت یعنی آشوب شدن و شلوغ شدن نه خیلی در شعر فارسی آمده یه جا هست یک بیتی که باز متأسفانه یادم نیست. نه، یک است که میگه مثلا ای روی تو فلان فلان بنشین که هزار فتنه برخواست ای, ای آتش فتنه عزیزان ای آتش فتنه عزیزان ای آتش فتنه عزیزان بنشین که هزار فتنه با. نزیر این خیلی و هر حال نشستن محشوب و برخواستن آشوب از مضمونای خیلی رایجی در زبون پارسی سید هست هم پس یکی لحظه چون نشست به جای برقه از روح گشود و موزه ز پای ما لازم میکنیم که مثلا اینجوری شاعر خب همجون میگه اون چیز تو ذهنشه این خانم این خوشگلیش از کجا معلوم بود وقتی چون شاعر میدونه قبلا که این خانم خیلی خوشگله همه توصیف‌ها رو می کنه ولی میگه بعد اینکه نشست او شو وا کرد و کف سرش که به صورت بوده موزه بوده از پاش درآمد خب بعد لازم که در بیاره گفت که یه کسی بوستش که مار سردرد می‌گیرد و خیلی سردرد سختی هم می‌گیرد به حدی که وقتی سرش خیلی درد می‌کنه میره دراز میشه رو جاده تا این کامیون بیاد از روشون ملاسیج و روز سر این یکی دیگه گفتش که خب ماره این رو واسه کی گفته بود حالا این هم می‌گه که حالم آسوده چون پس پس یکی لحظه چون نشن از پیل برقه از رخ گشود و برقه یعنی نخ برقه از روخ گشود و موز زفای شاهی آمد برون ز تارم میگه وقتی نجست رو منده شو برداشت کفرشم چیز کرد مثل این موقعی شاهی از توی پشت پرده همسراش بیاد کلو شاهی آمد برون چشم تارم خیش لشکر روم و زنگش از پس و پیش حالا این لشکر روم و زنگ کیال که گیسو بر رخصارش بله آقای من بگیم این کفش بلند نه نمود فرنگی هست چه شاهی آمد برونز تارم خیش لشگر روم و زنگش از پس و پیش رومی و زنگیش چه صبح درنگ صبح از یه طرف تاریک از یه طرف روشن دیگه رومی و زنگی اش تو سوپ درنگ رزمه روم داد و بزم زنگ رزمه بنیه بخچه پارچه است که معمولا بعضی‌ها نمیادن دوره حتی تا روزگار ما این کار اون وقت بخششون که وامی کردن پارچه های رنگ و رنگ بودید با اصلا رنگ های مختلف پارچه پارچه های رومی هم خیلی معروف بوده حریر روم و اینا معروف بوده یعنی که میگه رزمه روم بود این بخشه روم توپش زلطش هم بزمه زنگ رومی و نه روم نیا زنگیاش تو صبح درنگ رزمه روم داد و بزم زن تنگ کشمیز تنگ چشمی دو میبینید زیبایی اصلا زیبایی ترکانه است در شعر فارسی بازم تنگ چش تنگ چشمی تنگ تنگ چشمی دو من بخلو اصحادی. تنگ چشمیز تنگ چشمیدون همه سرویز خاک و سروی همه از خاک به وجود نمیده همه سرویز خاک و او از نور که از نور ساخت این اقراق رو استاد این کار فردوسی و سعدی فردوسی در داستان رستم و سهرات بگه که وقتی رستم آمد و رخشش پیدا شد اومد و رفت تو اتا خوابید و چوی که تیر شب در گذشت شباهنگ بر چرخ گردون بگشت در خوابگه نرم کردند باز و آمد میگه که یکی بنده آمد و پس بنده اندر یکی مهرون تو خورشید و تاوان پر از رنگو بود روانش خرد تن جان پا تن مردم جسم روانشون غیر مادی. منطقه عالی ترین محصول روان خرد میگه این تنش از جان ساخته شده بود روانش هم از خرد روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد زخان و سعدید بارها و بارها اینا رو داره ولی یکیش اینه میگه نگویم آب و گل استین وجود روحانی نگویم آب و گل استین وجود روحانی بدین کمال نباشد جمال انسانی اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت و مخمر و آب و حیوانی وجود هر که نگه میکنم ز جان و جسد مرکب است کنم تو از فرق تا قدم جان ده برد. ده برد. ده برد. تنگ چشمی ز تنگ چشمی دور نمستر ویز خاک و او از نور بود لختی چو گل سرفکنده به جهان آتشی درفکنده چون زمانی گذشت سربرداشت گفت با محرمی که در برداشت بلند ترس نمزنه پیش خدمش دست گفت با محرمی که در برداشت چی گفت؟ که زن نامحرمان خاک پرست می نماید که شخصی اینجا که از دنیای خاکی معلوم میشه بوی آدمی میاد به قولتون تو قصه ها میگم که دیوه اومد و بوی آدمی میاد که ز نامهرمان خواهد پرست می نماید که شخصی این جا هم هست خیزو برگرد گرد این پرگار پرگار اینجا به نید دایر هست خیزو برگرد برگرد یعنی بگرد خیزو برگرد گرد این پرگار هر که پیشایده آن پریچهره در زمان برخواست در زمان یعنی فوق آن پری چهره در زمان برخ چون پری می پری از چپ و راست خااج پری بحث کردم سی گفتم مم. که در قبل از اسلام موضوع هری بود بوده گفتم که با پر پر و یا نسبت یعنی فرد رو حال. آن پریچهره در زمان برخاست چون پری می پرید از چپ و راست چون مرادید ماند از آن به شگی دستگیرانه دست من بگیره دستگیری و یعنی محبت کردن و لطف کردن می کسیستی دید دستگیرانه دست من بگیره یعنی با لطف دست من گرفت گفت برخیست گفت برخیست تاروین چو دود چو دود یعنی خیلی سری. بانوی بانوان چنین این فرد نبید سرکار خانوم دست پند. کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا من به دان گفته، من به دان گفته هیچ نفس بودم، کار زومن دان سخن بودم پر گرفتم چو زاغ با تابوس دیگه اون خانوم مثل تابوس بود، منم مثل زاغ، کلاف آمدم تا به جلوگاه عروم معمولا عروس رو شب آرائش منطقه های آرائش می قاعدتاً قرار این است که عروس لاقل در شب عروسیش از همه زیباتر جلب کنن این است که گفته که پر گرفتم چوزا با تابوس آمدم تا به جلبگاه عروس پیش رفتم زرون یه چالاتی خاک روسیدمش من خاطی سلطان دیگه یه آداب رسیدن به خدمت بزرگان رو خیلی خوب بلد میده رفتم زمین بوز کردم و خواستم تا به پای بنشینم یک گوشه ای به پای یعنی بیشنم به زانوم اصلا خواهد یا یه چون نره تا زپای بنشینم زپای بنشینم این دیگه حرکتی نکنم همونجه بیشه خواستم تا به پای یا زپای بنشینم در صفه زیر جای بزینم گفت برخی جای جای تو نیست پایه بندگی سزای تو نیست پیشتون من حریف مهمان دوست جای مهمان ز مغز بهک ز پوست که من آدم مهمان دوستی هستم و مهمان رو باید پروی مغز جا دار بهترین یعنی جا رو روش دار نه پروی پوست. این تو روی بخون پیش پیش چون من حریف ایفه دوست جای مهمون ز مغز به ز پوست خاصه خوبی و آشنا نزری در پرورد رایز هنری بر سری را نزد من بنشین سازگار است ماه با پروین گفتم ای بانوی فریشت خوی با چومن بنده این حدیث مگو تخت بلقیس جای دیوان نیست مرد آن تخت جو سلیمان نیست گفت نارد بها بهانه مگی با فوسون خونده ای با فوسون خونده ای افسانه مگی ببخشید جیه یه بیت اینو مثل داره میخونم من یه تخت بلقیس جای دیوان نیست مرد این تخت جو نیست من که دی, دی شدم بیابانی چون کنم دعوی سلیمانی بعدش گفت نارت به گفت نارد بها بهانه مگیر با خسون خوندهی فسانه مگیر همه جایان توست و حکم تو راست لیک با من نشست باید و خواست تا شوی آگه از نهانی من تا شوی آگه از نهانی من بهره یا بیز بهره تا شوی آگه از نهانی من بهره یا بیز مهربانی من گفتمش همسر تو سایه توست تاج من خاک تخت پایه توست آمد. تاج من خاک تخت پایه توست گفت ها به جان و سرم که برای یکی زمان ببرم میهمان منی تو ای سر مرد میهمان را عزیز باید کرد چون به جز بندگی ندیدم رای ایستادم چون بندگان بر پای خادمی دست من گرفت به ناز بر سریرم نشان و آمد باز چون نشستم بر آن سریر بلند ماه دیدم گرفتمش به کمند با من آن بود به خوشزبانی ها کرد بسیار مهربانی ها پس بفرمود کابرند به پیش خان و ز شرح دادن بیش خان نهادند خازنان بهشت خوردهای همه عبیر سرشت خانز پیروزه کاسه از یاغود دیده را زو نصیب و جان راغود هر چندیشه در گمان آورد مطبخی رفت و در میان آورد چون فراغت رسیدمان از خرد از غذاهای خرد از غذاهای گرم و شربت سرد مطرب آمد روانه شد ساقید شد تراب را بهانه در باقی هر نچوفته دوری دوری میسفت. هر ترانه ترانه‌ای میگفت رقص میدان گشاد و دایره بست پردر آمد به پای و پویه به دست شام را ساختند بر سر جای ایستادند همچو شام به پای چون ز پا سودند دست بردی به باده بنمودند شد به دادن شتاب ساغی گرم برگرفت از میان بقایه شرم من به نیروی عشق و عذر شراب کردم آنها که رتلیان خراف بان شکرلب زروی دمسازی بازگفتی نکرد از آن بازی چون که دیدم به مهر خود رایش افتادم چو زلط در پایش بوسه بر پای یار خیش زدم تا مکم بیش گفت بیش زدم مرق امید برنشست به شاخ گشت میدان گفتگوی فراخ عشق میباختم به بوس و بمی به بوس و به بله. می به بوس و به می خود بدل سوانه کردم عشق میباختم به بوس و به به دلی جو... و هزار جان بابی خب گفت که چون من حریف مهمان دوست جای مهمان زماز به که زبوست خاصه خوبی و آشنا نظری من معدبم بوده تنیز بوده داکیباتی نبوده دیگه بالاخره آداب همصحبتی با ملوک این ها رو به نظر خوش آیند دیگه خاصه خوبی یا آشنا نظری دست پرورد راهوی زهنری رایز و هم سایز با دو تا سین یا سا اس با همزه و سین اسم رام کننده اسب به فارسی بهش میگن کاز ک تااز کنم که قضیه این است که اسب از ری. عصب باید وقتون زایده میشه کاملا آزاد باشه هیچ گرفتگیری نداشته باشه تا کاملا و انزایی عصب کامل جوانه یعنی عصقصش همه قرص باشه و عصقمارشت و گله عصب باشن گرن یلخی یلخی اینی که میگن پرانی یلخی بار اومده یعنی تربیت نشده و هر کاری دارش خواسته کرده یعنی مثل کره است که بلشت میکنن برای اینکه میگن که اگر بخوان بگیرن و بزین بر پشتش بذارن و مجبورش کنن به یه کار اینام میسوزه، پشت نمی کنن به درد نمی کنه این از که میزارنش تا کاملا بزرگش. شد بزرگ شد و موقع سواریش شد یه قول و بیشاه که ماه ها مثلا دو سال دنبال ننش دویده و هر وقت خواسته از پسلونش چی خورده و هر وقت خواسته اون بر رفته و اتاق و اون بر رفته اون بر رفته حالا رکاب میده به شما که زین پشتش بذارین و دهنه تو دهنش بکنین و رکاب هم بین به و تنگ زیر شکمش ببندین و اینا ها سوارش چیم فلی نمی کنی که این کسانی هستند که شغلشون بعد زیم گذاشتن به پشت اسب و رام کردن این اسب و باید بگم که اسب مثل هر تیبون دیگه مثل هر موجود دیگه شما دو تا از این برگای این گیاه که اینجا هست شکل هم مین هر کدومی طبیعتی داره و اون رایض یا سایست و طبیعت این اسب رو بفهمد که اینو باید با تندی و تشددت باش را کرد یا با مهربانی و ناز و نوازش کدوم بهتر را میشه اینو را همه را بلدن بلاخره با تمام این احوال وقتی که زین میذارم به پشتش من میخوان سوارشن این تمام قدرت خودشو بکاریم برای که نزه و دیده ای توی فیلم ها اینا که مرتب میان سوار هسته میشن و هی ای از این بر از اون بر اینقدر لگت میانده و اینقدر جفتک میانده و اینا تا بزنش بابرزن اگر یک کسی بود که اینو نگه داشت تا وقتی که یعنی چسب ولش گلش نکرد این نتونست از که قدرتش به انتحار سید که نوزن زمین اون وقت راه که بگیم اونه نه, نه. نمیشه راه این کارو الان در اصطلاح میگن صغون دادن. صغون دادن اصل ظاهرا ترکیه. ظاهرا با ترکیه. چون من اینقدر ترکیه خوب نمیدونم. یعنی نمیدونم که بدونم که ولی صغون دادن اینه همین کار و زربول مصادی هم هست که میگن اصلی که چند سالگی صغونش بدن تاخت و تازش میمونه برای سهرای بی آمد. کنم <تصحنت> که <تصحنت> با تعضیت و تو برپزنه و موقع شناتی ما هست میگه تو دست پرورد رایز هنری یعنی رایز هنر آمده به تو عدب آمود تو و حسنیت گرده خاص خوبی یا آشنا نظری دست پرورد رایز هنری میدونید این تا چی میگه؟ میگه وقتنه خود شده بله، خاموشش کنی یه چند دقیقه